اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا أيها الذين آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما بلان بوگین درود شریف اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراهيم وعلی آل ابراهيم انك حمید مجید بعضی انتقاد میکنن مگه اهل سنت درود نمیگن بلان بوگین قلق بو فرمک ما درود میگین بگیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید اینم درود است که در احادیث اومده درود سنت است اما این درود تاج و درود معراج و درود چتورکایی یار مردم پسان ساختن یا کلش بدعت است از خواندنش گدا نخوندنش خوب است و خواندنش یواز ثواب گناه داره همین کسای درود تاج میخونه و درود درود درود از دل خود جور کردن ما شما درودی را می‌خوالم که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما گفته در احادیث آمده اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم نک حمید و مجید خب بسم الله الرحمن الرحیم لله و صلوات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم موضوع امروز ما شما اسباب خشو در نماز است بسیاری از برادرای ما دوستای ما همیشه از ما سوال کردند و به خاطر اونا سوال کردند درس امروز ما بر جواب سوال از اونا آماده کردیم در حدیث شریف آمده که حضرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلام میگه اولو شیء یرفع من هذه الامه الخشوع اولین چیزی که از این امت برداشته میشه مردم به اون توجه میشن ایچی از خشو که در نماز خود نماز رو بدون خشو حتی لا ترافیه خاشن حتی میگه اگر در مردم رو بیبینی در نماز که هیچکس هیچ یک انسان روی که اون نماز بخونن در حالت خشو یه حدیث شریفه امام طبرانی در رواح طبرانی فلکبیر و در صحیح ده نمبر 543 روایت کرده و گفته است که حدیث صحیح است چون ما زیاد کوشش میکنیم که احادیث رو براتون بیان بکنیم که علما گفتن که حدیث صحیح است چرا که دیروز من در این مکتب شامل اصل کردم ریاض الصالحین ریاض الصالحین او را شیخ ناصر الدین البانی تحقیق کرده و مشکات المسابی این دو کتاب در افغانستان بسیار رواج داره یکی مشکات المسابی هست که در مدارس خوانده میشه و ریاض صالحین که زیاتر از او استفاده میکنه. متاسفانه ما دیدم که دمی احادیث ریاض صالحین میگفت این حدیثش ضعیف است این ضعیفه سی ضعیفه سی ضعیف است, است, است, است در صد حدیثش 80 تاش حذیف ضعیف است و ما شما نباید احادیث صحیح ضعیف سر از را تبلیغ بکنیم بوره با مردم برسانیم باید انسان یک کتابای که مثلا تصحیح شده و گفته شده که حدیث صحیح چون دین از حدیث صحیح گرفته میشه عبادت با حدیث صحیح درست میشه اما احادیث ضعیفه و در مشکات المسابيح هم بسیاری از احادیث بود که حتی بر ما اساتید ما در خرترکی چندین مرتبه گفته بودن تکرار کرده بودن ولی وقتی که راه خواندیم دیدیم که در مشکات المسابيح هم بسیاری احادیث ضعیف وجود دارم از این خاطر خصوصا کسانی که داری محفل وجود در مجلس هستن مبلغان هستن علما هستن معزینین هستن نماز میذنن کوشش بکنم که حدیث را که تا وقتی که صحتش را نمی‌فهمم بر مردم تبلیغ نکنم در غیر از او با رواجی احادیث ضعیف خود ای عالم گناهکار میشه و مردمی که به او عمل میکنه در روز آخرت دست از اونا و گرایبان از این عالم میباشم ازی خاطر احادیث را که من ذکر میکنم برتان سندش هم میتونم و میگم که صحیح هست و یا صحیح نیست اگر حدیث را بفاهم که صحیح نیست ایچ در سای خود نمیگیرم خب عزرت خوزیفر عدی الله تعالیه میگه و هم یک قولش هست که در کتاب از بنامه مدارش جلد یک صفحه پنج سنه ای سخن یک صحابی ببارک از بنامه حضایفر دلتان هم میگه اول ما تفقیدون من دین کم الخشون حضایفر دلتان هم میگه اولین چیز که شما گم میکنین از دین تانو خشون است و آخر, آخر ما تفقیدون من دین کم از سالات آخری چیزی که از دین گم میشه نماز است. و رب مصال لا خیر فیهی و زیفر دلاتانون میگه بعضی از نمازگذارها هستم که هیچ دو خیر نیست نماز میخونه نمازش خوشو نداره بنان در نمازازی هیچ خیر نیست و یوشکو تدخل المسجد فلا ترافیهم خاشن میگه بسیار نزدیک است که شما در یک مسجد داخل شوین و حتی یک شخص هم با خوشو نبیفین و این سخان حضرت حضیفه را دیالتالانهو امروز در کشور ما و شما در افغانستان در بسیاری از کشورهای دیگه که همجوار ما و شما هستند ما و شما میبینیم که امی صدق میکنه چون بسیاری کسر در مسجد انسان داخل میشه و هر کسر ببینیم که در نماز مسابقه است خصوصا در تراویه که در ماه مبارک رمضان است یک کلش مسابقه است بودردوانی هاست و هیچ نه وجود داره و نه کس متوجه نماز است فقط متوجه از است که چه وقت امی بیسرکات پوره میشه و چه وقت نماز خطر میشه که ما از نماز برایم این نماز ها اونا شما بودیدن که در این نماز ها گفتن که خیر نیست داریم خب ایناله سوال دیگه که مطرح میشه درست از ما این مشکلات داریم خب این مرض ها رو خب گفتیم همیشه ام انسان وقتی که مرض بیان میکنه باید علاج مرضه بگم این ما این مرضه داریم کسی که میگه من ندارم هیچ کس ایست. حتی ما خودم متاسفانه این, این مرضه دان نماز خود دارم و ما هم نمیتونیم با خوش خوشو با همو شکلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلام نماز خونده و نماز قبول میشه حتی ما خود ما خواندنم نمیتونیم متاسفانه این مشکل داریم خب علی مشکل داریم ما هم دارم، شما هم دارین کلگی این مشکل دارن علمای ما هم داره قاری صاحبای داره پس امروز به این ببینیم که نسخه‌ای که دو دواها باشه چی دواها هست که ما از چی پرهیز بکنیم این نسخه را من امروز بر شما تقدیم می‌کنم که علمای کرام درباره از این صحبت کردن و ما هم نظریات علما را از بحثا جمع کردیم این نسخه را برتان می خونم و شما میشه یادداشت بگیرین و روزانه در زندگیتان عملا تطبیق بکنین درس بر از این است برادر که فقط تو درس بشنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اینال این از خره ما شما یک یکی و شما کوشش بکنیم در ما غالبا برادر عزیز من حتی در بسیاری مجلسایی که از فلان بیست تا لقب میتا آدم میخیرم و اخلاص آدم گم گفت میکنم هیچی شراک نمیکنم از ترسی نمیگه بیشتری که بسیاری غرور رو تکبر است درسای ما در سایه بیانیه نیست که ما کسره بیانیه ابا تو و ما مردمای عاجز بیچاره هستیم و بیانیه را مردمای کتا کتا میدن ما ضعیف مردم هستیم از بیان میانه نیستیم فقط درسی که میدیم درس شما بسیار ساده که یاداش بگیرین و در زندگیتان تقص اوقات زندگیتان ا جور بکنین نمازای ما مریض است نمازای ما چی هست؟ مریض است میخوای فی نماز خودت وقتی که نماز ما مریض است خودمون مریض هستین میخوایم نماز رو جور کنیم امروز همین فرمولا رو می‌گیریم که ما امی مریضی نماز خدا و مریضی خدا چه قسم علاج بکنیم خب اولین تابلتی که اولین تابلت بردان که میتونید این تابلته نوش جان البته بعد از افطار و از حضور قلب است که نمازانه جور میکنم قلب علما میگن در وجود انسان مثل رهبر یا پادشاه هست یا کماندان است یا عامر است اگر قلب جور شد تمام اعضای بدن جور میشه و پیامبر گرام اسلام گفته که در وجود انسان یک پارچه گوشت است اگر این ای پارچه گوشت اصلاح شد کل اعضای بدن اصلاح میشه و اگر این فاسد شد کل اعضای بدن فاسد میشه اگر قلب تا تانستی در نماز با الله جلاله ارتباط بیتی در قلب انسان مثل سیمکارت امی سیم کارته که برای موبایل ما شما میگیریم به مو اندازه هم یک چیزه که طلایگیه که در سیم کارت است اونم مو اندازه در قلب هم یک جایه هست که اینمی چیزی که در سیم کارت ارتباط انسان با سطلایت مستحکم میسازن شما میتونین قلبتان با الله جل جلاله مستحکم بسازن بنا اگر قلبا در نماز ثابت شدی و قلبت به الله جل جلاله وابسته ساختی و ارتباط تا با الله جل جلوه مستحکم ساختی بناهن میتونی که نماز درست بخونی اگر قلبت مشکل داشت باست نمیتونی دوم چیزی که تابلیت دومه که ما میتونیم نماز خودم درست بسازیم او دوری از خوشوی قلبی هست و دوری از خوشوی نفاق خوشوی نفاق چی مانه؟ خوشوی نفاق مانایشی چی هست که یک نفر از حزیفر را هو پرسان کردن که خوشوی نفاق چی هسته؟ او مبارک گفت که انتر الجسد خاشه ان والقلبو لیسه بخاشه ان میگه او تو ببینی که یک نفر چی هستم؟ عزای بدن خدا بسیار با خوشو میگیره یگان یک یکی رو ببینه که در نماز قسیم کردن بدن خدا ها جستگرت خدا ان الله ربذران خدا یا خدات که حج گرفته یکی ببین خدا کوب گرفتم در نماز برادر کش کردن و کوب کردن و ای, ای, ای نیست که خود گردن بسیار در زمین نیزی که از گردن بخوره و کلیت چیز بخوره نه در نماز صف صفه صف صف استاد میشه از این خاطر اینی کسی که مثلا اعضای بدن خدا تماوت میگن خدا مرده وار کلی خدا پایین میکنه واسطین خدا تو کشال میکنه و یک قسم خدا میگیره ای در نماز نیست و ایرا چی میگن؟ ای را نفاق میگن که قلبش با خدا نیست فقط ظاهر خدا تو کشو کپ میکنه که مردم ببینه که اینوالا این نام خدا چی خوب نماز میخونه و با با تقویس و فلان است سعدی میگن دروش صفات باش و کلاه توری دار کلاه کلاه می‌پیشاد بسیار کلان، لوکس بسیار خوبش، دیگه میگه تا بسیار لوکس ولی لكن درویش قلبته، قلبتا از این خاطر صحابه کرام وقتی که یک شخص دیدن که اینه می قسم خدا کجو کور در نماز، برازو گفتن که الخشوع ہونا، ها, ها پیشن ما شما گفتیم که های تنبه هست برش آگاه کردن که آگاه باش که خشوعی ایجاز ہونا، ہونا در قلب قلبش بشوژه. اگر تو خشوع داری، قلبتا با خدا داشته باش، تو کلیت کجو کور خشوی قلب چه قسم واصل میشه که انسان عظمت الله جل جل هوره در قلب خود داشته باشه اجلال جلال الله جل جل هوره در قلب خود داشته باشه با وقار نماز بخانه با حیا نماز بخانه وقتی که قلب انسان حیا داشت وقار داشت جلال و عظمت الله جل جل هوره در کرد و با عظمت الله جل جل هوره پی بود باز اینجا خود بخود بر انسان نمازش از شرم خداوند از خجالت میکشه هایی کنه محبت میداشته باشه تواضع میداشته باشه برن اعضای بدن هم خود به خود جور میشه باز ریش خود ساتری نمیکنن در سر خود ساتری نمیکنن در لباس خود ساتری نمیکنن از این خاطر یک کس را دیدن که با ریش و با لباسی پای خود در نماز دستاک میداد یخان خود را جور میکرد ریش خودت پس بس میخشی میکرد باز گفتن که اگر قلبش هم آرامش میداشت. سوم تابلت و سوم شربتی که توصیه میشه برای جوش دادن مرض، مرز خرابی نماز که نماز باید ما با خشوع بخونیم، او چی است که انسان توجه داشته باشه که ما نماز یک هدیه است، یک تحفه است به الله جل جلاله. وقتی ما شما نماز می یک هدیه را، یک تحفه را به الله جل جلاله تقدیم میکنیم کنیم. پروردگارا ماوجد هستیم بیچاره هستیم این توفیق ما هست توفیق بچارگی گی ماست توفیق مسکینی ماست توفیق که بنده هستیم سر خدا به میمانیم میمونیم بران پروردگار این توفه غریبانی ما را بپذیر انال وقتی که توفه را شما برای یک کس یک توفه را میبرین میلین یک برای یک کس یک توفه گرفتین عثمان و را میبرین خوب پوش میتین خوب دهو گل گل کاری میکنین خوب را لکس میسازین تا کو جانب مقابل توفیه تا وقتی که ببینه قبول بکنم بنا نماز وقتی که توفه یک مسلمان به الله جل کوشش بکنیم که امی توفه را بسیار آراسته و زیبا و بسیار خوبی به الله جل جلاله تقدیم بکنیم اگر ده این فکر نماز خانیم که ما توفه را به الله جل جلاله میتون بنا ان در ترتیب و تنظیم ازو فکر میکنین چارمی تابلیتی است که انسان بفاهمه که نماز سخن گفتن با الله جل جلو است. نماز راز نیاز با الله جل جلو است. نیاز نماز ملاقات است با الله جل جلو پس وقتی که انسان صحابه اکرام وقتی که به مزید میرفتن میگفتن که کجا میری قدر لباس خوب میپوشی کالای خودو پاک میکردن لباس خودو جور میکردن سر چهری خودو خوب درست میکردن لنگی خدا، ریش خودا لباس هر کلش منظم میکردن و مزیت میرفتن میگفتن کجا میریم میگفتن من میرم با سخن با ملاقات با الله جل جلاله جل بنا وقتی انسان با الله جل جلاله جل ملاقات میکنه از این خاطر وقتی که از خانه با می نیت حرکت بکنه از این خاطر وسوسه ها و تشویش دور میشه شما میرین با ملاقات یا برای ملاقات با یک انسان، آخرین لباسام میپوشید، عطر میزنید، خدا بسیار منظم میکنید، سر و صورت تا جور میکنید و پیش ازو میرید. اما متاسفانه ما در نمازا میریم، یک نفره ببینی که کف زیتونبانی در نماز آمده. وقتی که بعد سجده میره دیگه خدا نگاهیت کنه، موجود چشم‌های طبیعی پد کنه در تخته پشت شخص است. روز ما در جای نماز میخونم، پیشونی میعکس نماز میخونم، در پشت سرش یک دونه باشه بالای کلان کلان داره میرسه. یکی دیگه در پشت تخته پشتش یک همقاقش عکس مرغ است دیگه چایی بینید که باشد چرا با برادر عزیز تو وقتی که به نماز مید بسیاری کساست که از زیرتون بانیگر خود از چملو که گهد ها یكیری بیر کاته یخانقاق دا مزیت می تنوار نشاست او تمام اعضای بدن چسبیده کید ستر عورتت فرض است برادر عزیز در نماز نماز خدام خراب نکنه نماز کس دیگرو خراب خراب از این خاطر باهمی بی ادبی که در مقابل خداوند استاد میشه بازی نخشو کرده میتونم نه توازن میکنن از این خاطر لباس در شخصیت انسان تاثیر داره گوشکلی که لباس های منظم پاک ستر عورت و همین های چسب چسب که میپوشیم ای عورت معلوم میشه ای, ای, ای پتگون ها در نماز پوشیدن که عورت انسان معلوم شد و خب از نماز خودش هم خراب میشه و نماز دیگر آدم کوشش بکنه که حد یک لباس رو بکنه که اعضای بدنش با سطر عورتش شود. آیا با پوشیدن پتگون های چست عورت انسان سطر میشه علما میگن نخیل خب پنجومی نسخیش است که انسان وقتی که میخواید که نمازش خشوع داشته باشه باید اسبابی که خشوع را جس میکنه چی هست تفکر است تدبر است از این خاطر انسان هایی که مانای نماز را نمی فهمه و واچ وقت در زندگی خشوع حاصل کرده نمی میتونه 40 سال نماز خاندی 50 سال نماز خاندی از خدا حیا بکن چه قسم تو نماز خونده میری و تو بال مانای نماز نمیفهمی از عقل باید بفهمی که سبحانك اللهم و وتبارك اسمك وقتی که انسان در نماز ست میشه مانای سبحانک اللهم را بخوره باز میگه سبحانک اللهم پاک یا الله بر تو وبحمدك و حمد و ثنا و صفات بر تو و تبارک اسمك و بسیار بابرکت است اسم تو و تعالی و, و بسیار عالی هست جد که منزلت تو ولا اله غیرك و نیست پروردگار را هیچ کسی به غیر قابل و قابل شایسته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا میجویم به الله جل جلاله و شر شیطان رانده شود بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکرم نماز خدا به نام الله که بخشنده و مهربان است این خشور را نصیب میکنه اما یک نفر نماز خونده که الله اللهم مانایش نمیفهمه به این خاطر نماز اگر میخوای که در نمازتو خشوع پیدا شود و قلب تو با خدا باشه از این خاطر مانای نماز بفهم وقتی که مانای نماز خ... فامیدی باز در آیات قرآن تفکر و تدبر بکو که ما در مقابل ذات رحمان سبحانه رحیم است مالک یوم دین است پروردگار خواص تو را عبادت می‌کنی و ایاکن استاین با تفکر و تدبر معنای آیات درست فکر می‌کنی اینجاست برای تو خوشو در نماز بیا اما یک نفر بس سبحان الله ما هم گفت تو بارکاسم کرد اونجا نگاه کن نمیتونه که باید, باید. نماز ما جور نمیشه نماز به این شکل جور نمیشه نماز جور میشه که تو تفکر و تدبر داشته باشی ششمی دوا تبلت احسان است در حدیث شریف است که حضرت جبریل امین علیه السلام در لباس انسان آمد پیش بیغمه صحابه فکر کردن که یک انسان است خب حدیث دویل است خلاصه سوالای از بیغمه سلام کرد یکی از سوالایش درباره احسان بود گفت که مال احسان و احسان چیست ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که انتعبود ربک که انک تراه تو الله جل جلوه را عبادت بکن مثل که الله میبینی فا این لم تکن تراه و اینه یارا باز اگر تو دیدن هم میتونی او خود را میبینه پس اتو نماز بخون در مقابل ذات با عظمت استاد هستی عرکات تره میبینه سکنات رو میبینه رکوی تره میبینه, میبینه سجیت تره میبینه از این خاطر اگر این خصم عبادت کردی در فکرت بود که مرا الله میبینه وقتی که ما در مقابل از اون استاد هستم باز اونجا خوشو توازو حضور قلب سکون آرامش وقار کلش برد حاصل میشه اما اگر بدون احسان نماز خوندی در نماز تو تابلیت احسان وجود نداشت باز بفهم که نمازی که احسان نبود دو واسور جبله محسنین نیستی وقتی که محسن نشدی خداوند با امرای محسنین است و نماز محسنین را قبول میکنم تابلیت نمبر هفت دور کردن چیزی که خشور از بین میبرن بعضی چیز است که خشور از بین میبرن اول وار خطاای است. یک یعنی نفر دویده دویده، الان مولوی سه استاش، الان نماز خواند شد. ببینید، آینه از دروازه تا واین جهت دویده دویده مردم میرن. در حالی که تایگان وصل سلام میگه که شما وقتی که به طرف مزیت میرین خدا با کار بسازه در راه مزیت ندهید. آهسته است برین. اگر رکاته گیر کردین خوب، اگر از پشت رفت خیرس. وقت کونا سلام دارند یا اگر چیز کنند. اما ای دویده نکا چون قسم میکنه کی بیا وقتی که دای مسجد رسید ها ها ها ها, ها نفسک میره عین نماز خدا هم خراب ساخت و نماز رو هم خراب ساخت و عمو خشو که باید بود از این خاطر باور خاطایی و دویدن اقسم مسجد نرین و نماز نخاین با وقار آهسته آهسته بیا تشفیشارا از کلی دور کو یک یکی از دوستای خداوند آمد در مسجد گفت نماز میخونم گفت یک دقیقه صبر کنیم. شش ثروپ ش ش ش ش ش دقیقه کنیم دقیقه چی میکنیم بداد بخی که وقت نماز گفتن صبر کنیم چرا گفت فکر در باری یک چیز ما فکر میکردم یک تشویش داشتیم شش تا منو تشویش خدا خلاص کردم خب که دلم جمع شد که دیگر تشویش ندارم این حالا بخیدین نماز بخوانیم بعضی کساس با تشویش من تشویش های خود در بین نماز خلاص میکنن یک نفر اومد در پاکستان یک مولوی صاحب صدا گفت یک نفر اومد بر من گفت که همین روزی نماز پیشین کات خوندی میگه ما گفتم که نیسه کات خانم گفت نه برابر سیرکات خانی از چی فامید که سریکات خانم گفت ما صاحب در اینجا 4 دوکان دارم در درکات اول حساب دوکان اولی میگیرم در درکات دوم حساب دوم میره امروز از این سه دوکانم حسابش خلاص کردم تو سلام در دادی فامیدم که سریکات خانی 4 دوکان مونده من قسم انسان باز میتونه که خوش خوشو در نماز داشته باشه یک کس دیگه میگه درکات نماز خانم هیچ خدای یادم نموند خوند رفتم دیگه مقصد درک کردم و یک مرتبه الله جل جلاله به یاد من آمد از این خاطر باید الله را به نظر داشته باشیم از تشویش و شبهات و افکاری که انسان در یک طرف می‌کشه برای اول خوب خود خدا خلاص کردیم. من خودم تشویش و شفیش ندارم درباره چیز فکر نمیکردم. نه بعد از این نیت, نیت نیت نماز می‌گیرم هشتمی تبلتی که پیشترم به شما گفتم دانستن معنای نماز است برادرای عزیز جوانای محترم شما که زحمت می‌کشید به در سام این همیشه کوشش میکنین از استادا تقاضا بکنین و استادا رو مجبور بسازین امامایتان رو مجبور بسازین خودتان وقت بدین لطفاً, لطفاً لطفاً لطفاً اگر میخوای نمازی که نماز پیغمبری شود و نمازتان قبول شود و زحمتتان به هدر نره لطفاً ماه مبارک رمضان ماه فرصت هاست مانای زیاد یاد نمیگیرین همین مانای نماز یاد داشته باش مانای سبحانکالله اللهم ربک ف مانای الحمدلله رب العالمین رو مانای سبحان ربی العظیم سبحان پاکس ربی پروردگار من مک... که العظیم بسیار بعظمت است وقتی قسموی که قسموید که پاکست پروردگار با عظمت من پاکست پروردگار با عظمت من سبحان ربی العظیم باست وقت نماز تو با خشوق چیز میشه بسیار ساده هست مانای نماز اگر کوشش بکنید عرقدر انسان غبی باشه در یک هفته کل مانای نماز رو میفامن خب نهمین تابلویت که از نماز به طریق رسول الله صلی الله علیه وسلم بخوانیم. اگر نماز هر قدر نماز بخوانیم به طریق خود، در نماز به طریق ما خوش نمی‌آید. نماز به طریق رسول الله صلی الله علیه وسلم بخوان. رسول الله صلی الله علیه وسلم چه قسم نماز می‌خواد؟ رکوش با استاد شدن از رکوکی قوم ما میگن اگر در رکوک میگفت به اندازه ساتش اگر قید که اینه به اندازه پینجا ثانیه پیغمبر سلام یا یک دقیقه رو کو کردن به میاندازه یک دقیقه سمی الله لی من حمیده ربنا لك الحمد تجربه کن امی شربت یک قاشق امروز نوش جان کن. امروز یک درکات نمازتن به طریقی رسول صلی اللہ صلی اللہ علیه سلم بخو. وقتی که کردی به میاندازه رو کن نافل بخوانی یک درکات یا کدام نماز فرضی تعمی خانی، یا سنت تعمی خانی. عادیاکل با طریق پیغمبر صلّی الله علیه و سلم درکات نماز بخواد. تجربه کردم با این واراکر بزار. در کوک کردی سبحان ربهال عزیم، سبحان را عزیم، سبحان را عزیم. سه دفع نگو. جوان استی، خداوند تو را قوت دادن، توانایی دادن. سه دفع سبحان ربهال عزیم، سه دفع سبحان ربهال علّقفتند. ای بردی استفاده. برادرم مریض، ناتوان، کمردر، پای درد، درد است. تو که الحمدلله کل اعضای بدن جور است، اتقال 3 دفعه نگو. لطفا 5 دفعه بساز. لطفا 5 دفعه نمازت به طریق پیغمبر شد. ایواز 3 دفعه، رکوع تا 5 دفعه بگو. دستمی الله و لی من حمیده، به می اندازه 5 را سبحان ربی العظیم استات. 3 دفعه سبحان بالله اعلی نگو. 5 بگو. خیر نو دفعه نگو یازده دفعه نگو پیغمبر صلی الله علیه وسلم و آله و سی مرتبه اندازه کرام با و 33 مرتبه و یک مرتبه سبحان ربی الاعلی را می گفت. و می اگر حساب می خیر است. 3 دفعه نگو. از این سه خدا لطفا بده. لطفاً خلاصی خطا بده. تا نمازت با تاریخی پیغمبر اساس یک تجربه کن. شروع کن. بگو پروردگارا باد از این نماز خدا سه دفعه سبحان الله نمیگم چند دفعه میگم میگم ان این شروع کنیم خیر است خیر است راه آ وقتی که 5 مرتبه سبحان ربی گفتی وقتی که 6 در جلسه به می اندازی 5 مرتبه سبحان ربی بیش امین همین نسخه که دم ماه مبارک رمضان که رحمت خداوند است شروع کن باز بیبی که لذت نماز بر پیدا میشه باز که شو بر پیدا میشی یا نمیشی باز که بر توازو پیدا میشی یا پیدا میشه. چرا؟ نسخی که رسول خدا داده لیو شفا هست نسخی که قرآن داده و ننزلو من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمن در قرآن شفا و رحمت است اگر میخواهی که از این شفا حاصل پیدا کنی این نسخی قرآن است نخص... نسخی که خداون میگه که قل این کنتم تحبون الله میخوای محبت الله را حاصل بکنی فتبیعونی مطابعت بکن بزرگترین مطابعت پیانبر صلی الله علیه و سلم در چی هست؟ در نماز است. پس نماز تا مثل نماز پیانبر بساز مثل نماز ما واره ما متاسفانا مشکل داریم ما خود ما مریض هستیم چون ما مریض هستیم شما را جور کردنم میتنیم ما براتان میگو که سن نماز ما سن نکنم سن سل نماز رسول الله صل اون نمازای شیخ و پیر و مرشد و فلان و دامولا و پانزامولا نگرد نماز تا به طریقی رسول الله صلی الله علیه وسلم جرد انشاءالله تعالی این شفا نصیبت میشه اشتومی تابلیتی که ما و شما دومی است دومیش آمادگی برای نماز انال وقتی که اگر میخوای نماز جور شود آمادگی های نماز جور بکن چه قسم؟ وضویت درست بساز. بسیاری کسا دم جایی که تشناب میردن امونجا استنجا میکنن. برادر عزیز، در جایی که تشناب در داخل کمد امونجا استنجا کردن، جای به جای وقتی که استاد میشی، قطرات آب دوباره خارج میشن وضویت خراب میشه و با وضوئی باطل کس نماز با حضور خواند نمیتونه. بناا در جایی که تشناب رفتی از بیت الخلا خارج شو، خوب حرکت بکون. باذ که مطمئن شدی بعضی کسا هستن که متاسفانه بی‌حیا هستن او قسمی بی‌حیایی هم خوب نیست لطفاً تا وقتی که بعضی کسامو چیزش دده سشاست و ایزار در بیرون چکر میزنه یک نوع بی‌حیایی است یک نوع بیطری است. دین اسلام دین تربیت و اخلاق است در داخل بیتال خلاق کل کارهات خلاص کو باز که بیرون برامدی در جای دیگه استنجاب بکو تا کاملا پاک و مطمئن باشی. اوزوی تا درست بکن اوزوی تا سعی بکن اوزوی تا به طریق رسول گرامی اسلام صلی الله علیه سلم بکن اینال این میتونه که در بهترین نماز تو به وقت برو خیر شرط نیست که افج نماز خوانده میشه تو اطمان باید یک دقیقه به از خانه ترکت کنی نه، باید دقیقه ده دقیقه بیشتر صحابه اکرام بیش از آزان داخل مزجد میشه منت پیش از آزان در مزدید می خیلی تو آزان که شنیده حرکت کن گفت حی علی سالا امر خدای عزوجل سرت چیزید ایلا به تکارت بیا به نماز صحابه اکرام که می که حی علی سالا چیزهای خدا می مند. حرکت میکنن به طرف نماز از این خاطر آمادگی قبلی تابلی توست که نماز درست می سرزن. ازان ازان جواب اذان گفتن بسیار کس از اذان داده میشن قرار قصه میکنن اذان جواب در وقتی که امام میگه معذن میگه الله اکبر تو الله اکبر او میگه اشهد الله لا اله الا الله تو هم بگو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله تو هم بگو اشهد ان محمد رسول الله ده حیا علی الصلا و حیا الفلا بگو لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و هر کلمه‌ای را که دیگه میگه الله اکبر گفت تو هم الله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله بگو جواب اذانه که بگوی شیطان فرار میکنه قلبتو تو آماده استقبال نماز میشه از این خاطر بسیاری کس‌ها جواب اذان متاسفانه در افغانستان بیخی گم شده و از بین رفته و هیچ کسی این سنت ادا نمیکنه جواب اقامت در اقامت هم جواب است لفظی که مؤذن میگه باید بگویی وقتی که او میگه که الله اکبر تو هم بگو الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله تو هم بگو ده حی علی الصلا و حی علی الفلا تو هم با امرایشان بگو که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اینی کاری است که میتانا که انسان برای آبادا بسازه برای جواب برای درست خواندنی نماز تامونین میگن تامونینه چی معنا یعنی آرامش در نماز این نقطه تابلت 11 ام از برای درست خواندن نماز جان النبی صلی الله علیه و سلم میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلام یطمئن حتی یرجع کل عظم الى موضیعه میگه پیغمبر شما وقتی که نماز میخوان آنقدر مطمئن میشد تا که هر استخوان به جایش حرکت بکنه مثلا وقتی که برکوع استاد میشد برو کوی ساد میشن، الله مای کن، بقیان بباشیم. وقتی که برو کو میرفت، استخوانها باید کلش منظم جوشه دیگه سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سامي الله لمن حمد. در اینجا وقتی کل استخوانها پس بچش بیه، تو روز هم تو استخوانها ایت کو پس، بس سجده میگری. میشه از این خاطر میگه در کلش باید مطمئن باشی دست سجده وقتی که میرفت وقتی که دست زده میرفت ما و شما دست سجده پیغمبر صلی الله علیه و وقتی که سجده زده میگه میگه برگاکو از زیر شکمش تیر میشه برگاکو از شکمش تیر میشه از چه خاطر ما این داره باید سجده رو به شکلی بکنیم که شکم ما شکم. اما ما و شما کل ما چسپیدگی زنواره بر زنار درست است که تش... کل اجزاء بدن چسیده باشه اما بر مرده ها باید سجده. وقتی که دوباره از سجده پس میشینی باید به با شکل میشینی که و بجای خود کلش قرار بیر. این اطمینان میگن این تمانینه میگن ولی ما متاسفانه امی تمانینه را نداریم وقتی که نداریم نماز ما درست خب کان نبی صلی الله علیه سلم یطمئنو حتی یرجع کل عظم الى موضیهی میگه آنقدر مطمئن میششت یعنی مطمئن استاد میشد رکو میکرد سجده میکرد در باید سجده میشیش در اتحیات میشیش که هر استخان به جایش میرسید نتونه که نولک به ذره انسان مثل زاغواره دوازامش دوازام تابلیتی که انسان از سرقت و دزدی در نماز دوری بکنه دزد نماز نباش دوزده نماز نباش ابی قطادته رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابی قتاده یک صحابی مبارک است میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفت که اس و الناس سرقتا الذي يسرق من صلاته گفت بدترین انسان هایی که دزد هستند در جمله دزدی ها الذي يسرق من صلاته یعنی کسی که در نماز خود دزدی میکنن قال یا رسول الله میگه مردم گفتن ای رسول گرامی اسلام این فیاسرق صلاته، سلاتهو چه قسم در نماز خود دوستی میکنن قَالَ لا يتم رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا گفت که رکوع و سجدش درست تمام نمیکنن این حدیث شریف حاکم نیساپوری در کتاب خود در جامعه صحیح خود نقل کرده گفت که جامعه صحیح حاکم جلد اول صفحه 229 و در صحیح الجامعه که حادیث صحیح جمع کردن در این حدیث نمبر 997 است بران ای حدیث حدیث صحیح هست که پیامبر ص گفته که بدترین دوزها دوز نماز است که یک نفر از رکوی خود یک عمر دوزی میکنه از خموی خود یک عمر دوزی میکنه کمک بالا شد سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم باز یک عمر که خدا بالا میکنه این یک عمر دوزی کرد دو, دو سانتی دوزی کرد باز در سجده کرد باز وقت وقتایی دو سجده باز یک اینی هستی در رکوع و در سجده تان دوز نماز نباشین. عن أبي, رضي... حديث عن أبي قطادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قال يا رسول الله كيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواه الحاكم جلد اول سفیر 229 و کتاب صحیح الجامع حدیث نمبر 997 سیزدوم تابلیت تابلیت سیزدوم به خاطر صحیح شدن نماز ما یاد مرگ از در نماز انسان مسلمان در نماز خود باید مرگ خود رو به یاد بیاره من میمورم امروز من در اینجا هستم آل نماز میخونم آیم اصفات 12 بجه آیت نماز پیشینه خانده بتونم؟ پیشینه میخورم آیت به نماز دیگر میرس. مرگ خدا بیاد بره انسان چرا حدیث شریف است پیغمبر صلی الله علیه سلام میگه که اذکر الموت فی صلاتی که اذکر یعنی بیاد داشته باش مرگ در نمازت فا این الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته لحریون انیحسن صلاتهو میگه اگر یک شخص مرگ خدا در نماز بیاد بره این میگه بسیار شایسته است که نماز خود درست بسازد. وصلی صلاه رجل لا يظن انه يصلي غيرها. پیامرسان میگه: ات نماز شخص رو بخون که او گمان میکنه که شاید اینمی آخری نماز ما باشه، دیگه فرصت نماز خواندن نداشته باشه. این حدیث شریفه در کتاب از امام البانی رحمت الله علیه به نام السلسله الصحیحه احادیث صحیحه البانی رحمت الله علیه جمع کرده حدیث 1421 است ناب کتابش است از سلسله صحیحه سلسله احادیث صحیح بنا یعنی حدیث صحیح از پیغمبر صلی الله علیه و سلام است که انسان وقتی که نماز میخونه مرگ خدا به یاد داشته باشه همچنان در صحیح جامع امام احمد هم روایت کرده حدیث شریف دیگه است که وصیت نبی صلی الله علیه و به ابو ایوب انصاری بایغم بس هم به ابو ایوب انصالی ناسیت کرد اذا قمت فی صلاتک فصلي صلات مودعن بایغم بس هم گفت وقتی که نماز می چیکو فصلی پس نماز بخون صلات مودعن نماز یک کسی که با من خدایی میکنه یعنی آخری نماز رو میخونه دیگه که اینمی آخری نماز من از من میخونه باده میمرم از این خاطر میگه اگر این قسم نماز بخوانی نماز تو با خوشو و توازو میباشه رواه احمد امام احمد رضی اللہ تعالیم روایت کرده در جلد پنجم صفحه 412 و در صحیح جامع حدیث نمبر 742 هست حدیث که در صحیح جامعه جمع شده او را, حدیث صحیح را جمع کردم. 14 تابلیت از از هایی که میتونیم که ما نماز خدا با خوشو بسازیم تدبر و تفکر در آیاتی که میخوانند از این خاطر وقتی که انسان آیات میخوانند مانا از باید ما شما بفامین و وقتی که تفکر و تدبر کنیم باز به صورت نماز ما درست میشه حضرت حذیفه رضی الله عنه میگه که صلیتم مع رسول الله صلی الله و علیه و وسلم میگه من نماز خوندم به امرای رسول گرامی اسلام صلی الله و علیه و سلم. یک شب یک را اون میگه پیغمبست هم قرآت میخوان بسیار مسترسل یعنی بسیار با نظم درست منظم آیت آیت با جای توقفش وقتی که در نظر گرده شد وقفش حرکتش مدش شدش کلش در نظر گرده شد گفتی کسی پیغمبست هم نماز میخوان اذا من را به ای... آیتین فی ها تسبیحون سب میگه وقتی که در یک آیه را میخواند که گفت تسبیح هست فقیقا مثلا تسبیح میگفت و اذا مره به سؤال سأله و در یک جایی که سوال میگه ربنا آتنا فی دنیا حسنا سؤال میگهد که پروردگارا چه و اذا مره به تعوذ تعوضم و وقتی که به کدام جایی که با پناه به خداوند میشد ای به خداوند پناه میجست رواه مسلم ای حدیث شریف امام مسلم در صحیح مسلم روایت کرده نمبر حدیث هست، خب. پانزدهم نسخه که ما را میتونه که نماز ما رو درست بسازد و نماز ما رو از باریزی خلاص کنه چیست که؟ انسان آیت آیت بخونه. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين توقف <تصفيق> کن. الرحمن الرحیم توقف <تصفيق> کن. مالک يوم الدين توقف <تصفيق> <تصفيق> کن. ایا <إياك> کان <نعبد> و ایا <إياك> کان استعین توقف <تصفيق> <تصفيق> کن. آیت آیت بخون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن دسه هر جا که آیه پوره شد جای وقت بس توقف است توقف کو بنا آیت آیت آیه خواندن از طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلام ما و شما یک دفعه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس لذی يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس والا قارس ام نام خدا چی خوب نفس داری یالا خدا بتین برش جایزه موتر فلوکس واغونه فلوکس واغونه دوان اگر مرسی نماز نماز نماز بایقا مرسی سلام سر ار توقف میگه پس نماز است با توقف سر ار آیت تیز نام خدا صدای بسیار زیبا داری قربان صدایی نام خدا حافظ استی قربان حفظ بسیار خوبش میتونی که خون نرابو کری خوب ازم بیقی میتونی بسیار خوبش هست لیکن از خدا بترس به طریقی پیغمبر سلام نماز بته قل اعوذو برب الناس استاج ملک نس استاج تا کسی که نماز پیش شرط میخونه ادعاقل اگر اون مانایشو میفهمد تو که نمیفهمی او بیچاره رو وقت بته خیلیست که او بیچاره که که فکر رخ. ام مصالمه رضي الله تبارك و تعالی میگه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلام میگفت بسم الله الرحمن الرحیم و در روایت میگه ثم یقف باست توقف میگه ثم یقول بعض روایت الحمد لله رب العالمین ارحمان الرحیم و در روایت ثم یقف ثم یقول بعض وش می مالک یوم الدین یقطع قرائته آیه آیه ام مصالمه از ازواج متطهرات است ای حدیث شريفه ابو داود داوود روایت کرده در حدیث نمبر 4001 و صححه الالبانی و امام البانی گفته که این حدیث حدیث صحیح است 14می است که 16ام نسخه ای است که ترتیل قرات و حسن صوت کوشش بکنین که برادران عزیز کورس جور شده کوشش بکنین باز کورس جور شود باز دعوت بکنین بس گوسای تشوید اشتراک بکنید بیش خود که ششین نماز دانو تان تیر بکنید بسیاری اساس یک نفر آمد گفت ما س 25 سال نماز خاندیم آها گفتم ها اندیوال ما بود بفالام ما 25 سال نماز خاندیم گفتم خوب کردی که خاندی تو امی قرات ما گفتم تو بخوانی بفهم قراته گفت قول اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اوه گفتم خراب کردی خدا جن او جا میگه مگن شر وسواس خناس از شر وسواس کننده هایی که خناس هستن من الجنتی که این وسواس ها رو میگن شیطان های جینی میگن و شیطان های انسانی میگن ای گفته که از شر کسایی که وسوسه میکنه از باغاها و انسان ها جنت چی رو میگن باغا میگن. از با باغ هم کس را وسوسه کردن گفتم این سب ایندم یک زیرا که زبره 25 سال این جنرا جنرا خیر غرورتو بشکنم با خدا که انسان غرور خودنش کنه نش اگه اگر علم یاد بگیره اگر دانش یاد بگیره اگر خلان کاری کنه چیز جوری یاد بگیره یعنی خلاص غرور تا بش بگو قاری صاحب اجازه اس نمی الحمدلله را پیش تیر کنم قاری وقت داری تو بگی همین سوره رو که ما خونیم امین یک دفعه پیش تیر کنم خلاص یک دفعه تیر کن یک دفعه تیر کنی دفع کن. دو دفعه سه دفعه چهار دفعه امین تبلیغی ها یکی از خوبی هاش این هست که وقتی در تبلیغ میرن باز اونها وقتی که ساعت ها شب و, بجن و بجن شد باز میگن که بشین یعنی اله امو نماز خدا پیش از دوگر تیر کنن نماز جور است این خیر است ما شما خواه سه روزه و چل روزه رفتن نمیتونیم شیطان واس واسه هم میکنن خیلی نماز خدا خود جور کنیم خب از این خاطر امام احمد سمیه که مگه پیغمبر سمکان روایت کرده حدیث شریفه مگه کاند قراءت حوض فلالله و وسلم مفسرتن حرفن حرفن میگه پیغمبر سم وقتی که قرائت میگن حرف حرفش فامیده میشد که الحمدلله رب العالمین حرف حرفش میفهمید که اینی خان این حرف خان این حرف خان این حرف خان مصند احمد جلد ششم حدیث 294 ابداون تابلتی هست که انسان بفهمه که چیزی که ما در نماز میگم دعایی که ما در نماز میکنم اینمی دعایی که در نماز میکنم این رو خداوند اجابت میکنه. بهترین آلاتی که انسان با خداوند بسیار نزدیک است و خداوند صدایش را و اجابت میکن در حالت سجده هست ما شما هیچ طرفانسان رواج ندریم در حالت سجده کس دعا بکنه هیچ فقط اونم سه دفعه سبحان ربی الا اعلی اما احادیثا بخواین پیامبر صلی الله علیه و و صحابه کرام در حالت سجده ها دهو وقت دعا میکردند استغفار میکردند اون وقت خداوند قبول میکرد اون خداوند قبول میکرد ازي خاطر اكا انسان فهمت كتا نموز وقتك ما امي نموز كل اش دعا هست التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة اللهم صلد دعا هست اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفعلة دعا هست الحمد لله رب العالمين وقتك ميجي اهدنا صراط المستقيم دعا هست اياك نعبد و اياك نستعن دعا هست صراط الذين نعمت عليهم دعا هست غير المغضوب عليهم دعا هست كل از این خاطر خود نماز سالات به مانای دعا هست اگر بفامی که در نماز استجابت میشه پس در بین نماز خشوعی داشته باشی همون آلتی که در دعا میگیری همون آلت در نماز بگی نماز نماز پیغمبریمشه سیک فرمول من نماز من نماز تیزم میخونم در 3 دقیقه اما 5 دقیقه با بسیار عاجزی به دربار خداوند سایه را خدا بالا میکنم دعا میکنم چه خصم قسم کنم که نماز پیغمبرشو همین 5 دقیقه از پشت نماز بکش در دا داخل نماز در دا داخل نماز اونمو نمود تواز و اونمو نمود خوش و او آجیزی د. که در نماز الله ما ربنا فی دنیا سنتوا فل اخت سنتوا و کن عزبنا سلام مالی که من سانم باز با دیش دنی. الله ما ربنا آتنا فی دنیا حسنات چرا در نماز می قسم. امی امی, امی امی امی امی سیستم امی می دا در داخل نماز نگرفتی که اصل نماز که مستقیبا با خدا گپ است وقتی می ندی سلام مالی که ما سلام گپ خلاصید ول سر رو می نماز پیغمبر هم از این قسم بود از این خاطر اونا بعد از نماز چی میکردن بعد از نماز نسقی پیغمبر هستن بازگر قسم هستی ما او را میخانیم خب اجدوم چیسته این حدیث شریفی که اجابت میکنن قال الله عز وجل حدیث شریف است. بسیار حدیث طویل هست من قسمت کتایشو برطان نقل کردیم حدیث شریف میگه که حدیث قدسی هست حدیث قدسی واسه که پیغمبر سم از الله جل و جل و روایت بکنه. رو الله بکنن رسوله که قال الله عزیز و جل میگه الله جل و گفت که قسمت صلاة بینی و بین عبدی من امازه تقسیم کردم بین خود و بین بنده خود نصفه نصف نصفش کردم ولی عبدی ما سأل. او چیزایی که بر خداوند است توت حمدشم میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و نصف دیگهش اینا نوبت بنده میرسه ولی عبد ما سأل وقتی بنده میگه اهدینا صراط المستقیم ده نماز میگه خدایا مرا راه راست هدایت کن صراط الذين ان ام الهی مرا راهی راه سن بالاشان انعام کردی انبیا هستن صدیقها هستن جوادا هستن صالحین هستن اینه باز میگه ولی عبد ما یه این حدیث شریف است صحیح مسلم صحیح مسلم این حدیث شریف روایت کرده حدیث بسیار طولانی است قصه از من نسخه در مقا... نماز در جایی که پیش مردم تیر بر میشه نخوان اگر دم ازی تا بودی در پشت یک ستون بخوان در جای کنج برو بخوان در جایی که پیش دیوار باشه بخوان ستره ایره ستره میگن نماز که در جای بخوانی مثلا اگر نفر در پلخشی نماز میخوان در یک میدانی قرار ده مو مردم تیر شد میره وام که تیر میشه دیگه میره وام که تیر میشه اون هر کس اون نماز خوشو نمیشه چرا که تیر شدن مردم مانع میشه برای چی تو؟ برای حضورتون. دوازدوم اینه است که ادب نماز به مفاهیم که در نماز چی ادب است؟ باید دست خدا را کجا خود بگیرم؟ چشمم کجا را مسائل کنم گوشم کجا متوجه باشه؟ قلبم در کجا نما؟ اینی ادب نماز است که چی هستم بیستمش یک دعا و یک ذکر نگی ذکرای مختلف کوشش بکو در احادیث هست که مثلا کدام از کار هست یاد بگیریم. اگر او از کار که در احادیث آمده او رو ما یاد بگیریم ما شما فقط در نماز هم و اللهم رو بناتنا رو یاد داریم سیزنی دیگه از که در او که میشه تنها سبان روی لزیم رو یاد داریم دیگاهش رو یاد نداریم با دستمی الله و, و فی اینو یاد بگیریم در سجده مثلا کلام چیز داره میگیم در چند بین دو سجده چی میگیم اگر اینیا رو یاد بگیریم با تطبیق بکنیم او وقت است که نماز ما جور میشه دیگه ی هست که مثلا اعوذ بالله را ما شما میخویم این رو شکل درست بخونیم 22 چی شد بیسیاکم اعوذ بالله گفتن است خور خ شما میگیم و این با معنایش بگیم 22م چی که به حال سلف به حال صحابه کرام نظر کردن عداقل بگو مبلایست امی اصحاب کرام چه قسم نماز میخوان امی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم کل ما را میفهم که بهترین ها اول قرن پیغمبرستان بود بعضی که دیگران سه قرن اول امی مرد چه قسم نماز میخوانند که بهترین مردما بودن که ما هم از واشه برات میگه که اونا می وقتی که نماز میخواندن میگه کس نماز میخوان نماز میخوان حضرت علی کرم الله که فکر میکردی که چوب خشک شعب خاشک در مقابل الله جل جلو خراج است. شور شعور نمی خود صحابه نماز می خواندن پرنده ها میمه می فکر می که درخت هست فکر می که درخت هاست. چرا نمازش طویل با بسیار عز و توازو پرنده ها میمه میشیش و احساس نمی گرد که حرکت دار این نماز صحابه کرام نماز می الله جلاله در مقابل جنت سراس است جنت دید این است دوزخ در دست چپ ماست در پشت سرموم است یا الله ازرائیل خفکم نکنم در دوزخ نفتم در جنت خدای من نصیب کنیم از این خواهد با بسیار چند نماز میدن پروردگار دیگر آنیست فقط تسلیم شدن بد این قسم نماز سر انسان تاثیر میدن اما ما نماز میخونیم یک روز هم نه ازرائیل تا فکر خود گرفته و نه هم جنت رو فکر خود گرفته ایم و نه این ای چیزی اینه از این خاطر میگه شما سیرت صحابه کرام سیرت اولیاء الله سیرت دوستای خدا سیرت کسانی که حقیقتن دوستای خدا بودن این دوست خدا نبود که یک نفر میخزن میگه مالا اگه دوست خدا بود اگه جای چل سال جانلو ششته بود من افتون دوست خدا, خدا پوت بود دورت خدا پت میکرد خانه خود یارنده چی شده بود کانال خودمو میپوشید فرض ترک طرح میکنید ما دوست خدا هستم دوست خداوند خب حکم خدا رو تطبیق سیرت صحابه کرامو بخوانیم. نماز صحابه کرامو ببینیم نماز تابعین و تبع تابعینو ببینیم اون دوستای خداوند که حقیقتا مطابق سنت پیغمبر سلام نماز میخونن اونو ده او صورت است که نماز ما جور میشه دیگر 23م است که آدم بفهمه که خشوع چی مزه ها داره چی فایده ها داره مثل که امروز ما و شما فهمیدیم 24م است که دعا را در جایش باید دعا بکنیم در وقت سجده باید دعا بکنیم 25 و نسخه چیست؟ 25 و پنجم که از کار بعد از نماز باید بفرمیش بعد از نماز چی زکراه است؟ عمیق قسم که ما میکنیم یا اله صحیب خاری صحیب مسلم سنن عبیب داود ابن ماجه نسایی یاره را بکش. کاری که وقتی که سلام آداب میدیم سفید در سلام کنید. لا اله الله محمد السلام. او برادر لا اله الا الله درست است اما تسبیح بعد از نماز لا اله الله نیست اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت يا الجلال اللهم انت السلام اللهم انت السلام ومنك السلام, انت السلام. تبارکت یادل جلال و الکرام برادر عزیز اینمی فقط یک آنکه اکتیت و تعالیت و تعازمت و از دل خجور کردن اینمی داره که از دل زیاد کردی سر پیغمبر زیاد نکو پیغمبر سلام کرده ما و تو پیش نیستیم ما به خاک پای پیغمبر, پیغمبر نمی دستیم پیغمبر سمین اینمه خا گفته اینمه خا گفته آسان گفته چرا کنگی یاد بگیره این چیز داره که تو پیوان کرده این ای کالای پیواندی نه کس پوشید نمی پوشد نمی, نمی تانه پوشید فقط اللهم انت السلام و من کس سلام تبارکت یاد الجلال والکرام این همی دعای چیست بعد از این چیست تسبیحات هست سی, سی بار سبحان الله سی و سی بار الحمدلله سی و سی بار الله اکبر این تسبیحات نماز هست که میشه باز ما و شما چیز کنیم عدیس سی, سی هست باز اتمامش عمو یک لا اله الا الله که در دعاها اجتهاد بکنی اجتهاد یعنی کوشش بکنی در دعاها کدام دعا سنت است که ما هم دعاها را انجام بدیم 25مش ذکر هایی که بعد از نماز میشه ایره بکنی 26م دورین لباس هایی که با تصویر است لباس هایی که عکس داره بی گپا از جان دور بکنیم 27م گفته حاقن و حاقب نباشند حاقن و یکی <متضیق> <متضیق> حاقن است و یکی حاقب است خب اینم کسایی هست که حاقن کسی است که پیشا به خودم ماکم گرفته و حاکبی است که مثلا ضرورت به تشناب رفتن داره خوب همون تو وضو ش و تنگ است باشه می نماز که به باز برم اول وضوگا که تنگ تا خلاص کن یک وضو خوب صافاست آزاد از این خاطر گفتن که اینی قسم کسی که وضویش تنگ باشه با فارسی ما شما میگیم با وضو تنگی نماز نخونه چرا کسی که وضویش درست نباشه اونم میتونه نماز درست بخونه حاقن حی الف قاف نون حاقن یعنی باز شکل بودم کتاب که حابس البول و حاقب حی بدرخی حی الف قاف ب حابس الغائته اینی چه هستن؟ یعنی انسان وقتی که نماز می باید اوزوش تنگ نباشه و باز در حدیث شریف دیگه هم گفته که چی هستن من دفعه خانده بودم که سه طایفه مردم هستن کی مردم, مردم همون چی هستن یکی گفته بود کس که اوزوش تنگ باشه نماز بخانه یک امامه که امامت کنه مردم از راضی نباشه از امامتش خاین گفته بود چی گفته بود یادم رفت بالله و علم. بیسته اشتوم نسخه که ناس یعنی کسی که خسته باشه برادر اگه خسته هستی خوابت گرفته یا فاجه میکشی دیگه فاس در که سرت خوت رو برو میبورو اوزو بکن خودت تازه بکن باز نمازت اوزو بکن خودت تازه کن اما یک نفر هستم این یک که بگو این یک که باز ای کشون نمیشه بیاده بیده مقابل خداوند جلو جلو هست بیسته نوم دروتجوی نماز اخر که یک نفر بی یا سیه یک نفر خوابه سو یک نفر خوابه اونجا خم واسه نماز خوند می رو که لگد تک میزنه و شورک میخوره تو متوجه ازو اونجا گفته نماز نخوان اگر میخوای که نمازت چی شوه دگه سیوم ادبیه است که چشمایت در نماز بالا نکو یگانه که نماز میخون الحمدلله رب العالمین شنو آسمون سل کردن گفت سلف این ناروا هست فقط به طرف سجده سل بکو سیوم چشمان خودت به طرف آسمان بلند نکنه. در نماز به طرف آسمان نظر نکن در عقب بیوزو انسان خواب نماز نخانه بیست نوم در عقب بیوزو کسی که خواب است نماز نخانه سیومش چشمای خدا در نماز به طرف آسمان بلند نکنه سی ترک سدل است ترک سدل چی مانه؟ سدل که بسیاری کسی ها امی لباسای خودا کشه ها کشه های مثال اگر نفر آسینا چپنش نماز میخانه از دراز است. در دراز از بازی که در رکوع میره واسینه که دراز میشه یا مثلا شملش در زمین میخوره این قسم یه قسمی شده رو باید گفته نکرین دوم نسخه شی است که عدم الاختصار کوشش نکنه که در نماز کوتاهک نماز بخونه کوشش کنه که نماز خود خیر بر نماز خود دو دقیقه تقسیم اوقات تنجور کنیم بگو مثلا من نماز من میخونم درکات نماز من اگر تا در یک دقیقه میخورم بگوی خیر سمیر در سه دقیقه میخونم برادر عزیز صد تا سوال کنم ما ببینم باز چند دقیقه خوندم؟ در یک دقیقه ترکات نماز خوندم نماز نیست برادر عزیز درکات نماز حداقل دو تا قرائت باید با طریق پیامبر است 5 درکات نماز, درکات نماز اگر 5 دقیقه به با پیغم پیامبر است اگر در یک دقیقه خوندی با طریق خودت است 32 مش 33 مش آخرین چیزی که بود ها خب 33 هم با آخرین نقطه شیشه است که در نماز خود تشبه با بحائم نکنه یعنی مثل حیوانات ششتن مثل ششتن شتر، بسیاری کسی ها مثل شتر و اول دستای خود در زمین میچست پنه باز بعد از, از, از پایه پای خود پایین میکنه و بعضی کسی مثلا گفت ششتن مثل ششتن حیوانات که مثلا بعضی اوقات میشنه یا مثلا سجده کردن مثل سجده مثل نول زدن حیوانات اینی چیزا را ترک و تشبه با بحائم در نماز آج باشن خداوند مطالج، جل, جل و شما را توفیق نصب که نمازه خدا با خوشو و درست بخانی و همیشه سنوس تابلیت در نمازه خود تدبیق بکنیم. سبحان ربیکر رب العالمات عماره و سلامت علی مفسرین و الحمد لله رب العالمین. الهی پروردگارا در دهی رحمت قرار داریم، دهی رحمت ماهموارک رمضان است. الهی بخانی تو آمدیم، بخانی تو با آجوزی آمدیم. الهی تمام باک خانی تو آمدیم، به خاطر آجوزی پروردگارا. از رحمت دهی رحمت ما را محروم نسازی. الهی ما را هم در لیست کسایی که بالایشان رحمت رحمتتون نازل میشه با برکت اینمی دهی رحمت سر ما هم تا بفرستادی. الهی گناههای ما را عفو بکنی، الهی اشتباهات ما را ببخش، ایله هر کسی که از ما امید دعا دارن خدای اونا را مغفرت بکنی، مرده های اسلام مغفرت بکنی و مریض ها را شفا بکنی، ما را هنوز علمشان و اخلاص تقوی نصیبشان بکنی طالبای را عالم بسازی مجاهدین اسلام در هر جایی که خاطر اله کلمت الله جهاد میکنن پروردگار اونا را توفیق نصیب بکنی کسانی که سستی و تمبلی میکنن در جهاد پروردگار اونا را توفیق نصیب بکنی که بر علیه کفر و بر علیه مرتدین و ظالمین جهاد بکنن الهی پروردگار ما از رحمتت محروم نسازی و آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشن در لحظات مرگ کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و جنت نیست جایی بی نمازا و دوزد شرایی بی همان و رحمت چهار به نصیب از آرکان از پرایه به نمازان تابوی از سطح به زندگی بیشتر نباشد صاحبانه مال موسیقی